در زمانهای قدیم کاخ زیبا و بزرگی بود که از مرمر سفید با منارههایی از طلا ساخته شده بود. منارههای کاخ از دور دست و از همه جای دشت دیده میشد. منارهها از دور زیر نور آفتاب می درخشیدند. در شب هم زیر نور محتاب برق میزدند. در بالای هر مناره پرچمهای رنگارنگ آویخته شده بود که با وزش باد به رقص در می اومدن. در کاخ فرمان و زندگی می کردن. اونها زوج بیغمی بودند که خودشونو با مهمونی های فراون بالماسکه های شبانه برای صدها نفر یا خیلی کارهای جالب دیگه سرگرم می کردن. بعد از گذشت چند سال به این فکر افتادند که باید بچه دار بشن اونا گفتن ما داریم پیر میشیم. همیشه هم که زنده نمیمونیم نیاز به جانشین داریم اما سالها گذشت و اونا هنوز نه پسری داشتند و نه دختری در سالهای گذشته حتی یه لحظه هم از هیچ چیز غمگین نشده بودن اما حالا به هیچ چیز دیگه جز بچه فکر نمیکردن. اونا اونقدر در اشتیاق داشتن یه کودک بودند که فکر میکردن بدون اون میمیرند اما سرانجام؟ ملکه دختری به دنیا آورد. کودکی که مدتها انتظارش را میکشیدند. اونقدر براشون ارزشمند بود که همه چیزهای خوب زندگی رو براش می‌خواستند. ملکه گفت: "یه مهمونی می‌دیم، همه پریای کشور رو دعوت می‌کنیم تا هر کدومیشون به کودک ما یه هدیه بده و براش دعا کنه." فرمانروا گفت: در عوض ما بهشون صندوقی از طلا و چاقو و قاشق و چنگال طلایی میدیم که با الماس و یاغوت تضین شده باشه. شش دعوت نام فرستاده شد و شش پری بالدار به مهمونی اومدن، پریا دور گهواره شاهزاده جمع شدند. شاهزاده کوچک در پارچه از ابریشم سفید و تور سفید تمیزی به خواب رفته بود. چهارمین پری اولین کسی بود که هدیه‌اش رو داد و گفت هدیه من به شاهزاده زیباییه پری بعدی قدمی جلو گذاشت و گفت هدیه من هوشه که شاهزاده باهوش و زیرک بشه سومین پری گفت منم قدرتی بهش میدم که هر کاری خواست به انجام بده چهارمین پری گفت وقتی آواز میخونه صداش به شیرینی صدای بلبل خواهد بود پنجمین پری گفت هیچ کس به زیبایی و وغار شاهزاده نمیتونه برقصه ما سنترین پری میخواست تدیه خودشو بده که یه چیزی باعث شد مکس کنه ناگهان چرخید همه نگاهشو دنبال کردند. بیرون در عجوزه پیر ایستاده بود لباسش خاکستری بود و ناخونش با رنگ خاکستری رنگ شده بود و بالهایی به رنگ گرد خاکستری داشت. عجوزه روبروی فرمانروا و ملکه ایستاد و پرسید: چرا منو به مهمونی دختر کوچیکتون دعوت نکردین؟ فرمانروا و ملکه با ترس به هم نگاه کردند. می میشد که کسی پری خاکستری رو در کشور ندیده بود. همه او رو فراموش کرده بودند. عجوزه فکرشون رو خوند و گفت: اگه می‌خواستید که من اینجا باشم خیلی زود منو به یاد می آوردین شما فراموش کردین که منو دعوت کنین. می‌خواستین منو به دور بندازین. شما فکر کردین یه عجوزه پیر چیزی نداره به دختر شما بده. فرمانروا و ملکه شروع کردند به معذرت خواهی اما پری خاکستری حرفشون رو قطع کرد و گفت خیلی دیر شده دختر کوچولوی شما به جای هدیه نفرین منو خواهد داشت رنگ از صورت همه وازران پرید همگی میلرزیدند وقتی پری خاکستری روی بچه خم شد هیچکس کس جرأت صحبت کردن یا تکون خوردن نداشت پری گفت زیبای من میله چرخ ریسندگی تو را سوراخ میکنه که باعث مرگت میشه با گفتن این حرف پری خاکستری ناپدید شد ملکه از هوش رفت فرمانروا و همه اطرافیان گریه میکردند اما مسنترین پری قدمی جلو گذاشت و گفت من هنوز هدیه ای ندادم نمیتونم نفرین پری خاکستری رو از بین ببرم ولی میتونم قدرتش رو کم کنم به جای مرگ شاهزاده به خوابی عمیق فرو میره این خواب صد سال طول میکشه تا اینکه شاهزاده ای با یه بوسه او رو از خواب بیدار کنه بعد میتونه اونطور که میخواد زندگی کنه خیال فرمانروا و ملکه آسوده شد اونا فرمان دادند که همه چرخهای ریسندگی سراسر سر کشور رو از بین ببرند اونا گفتند حالا دیگه از نفرین پریه خاکستری نمی ترسیم و دختر ما میتونه از هدیه هایی که بقیه پریه ها دادن لذت ببره فرمانروا و ملکه شاهد رشد دخترشون از نوزادی دوست داشتنی تا بچه ای زیبا بودن همه عاشقش بودند نفرین پریه خاکستری از یادها رفت به طوری که وقتی شاهزاده به سن 16 سالگی رسید همه اون نفرین رو کاملا فراموش کرده بودند. البته هنوز استفاده از چرخه ریسندگی ممنوع بود. درست بعد از جشن تولد شانزده سالگی شاهزاده، فرمانروا و ملکه برای تعطیلات به بخشی دیگه از سرزمین سفر کردند. شاهزاده که تنها شده بود، برای اینکه خودشو سرگرم کنه، تصمیم گرفت اطراف کاخ رو ببینه. با خودش گفت: از زیر زمین شروع میکنم ببینم چی پیدا میکنم بعد از مدتی گردش خودش رو در راهروی دید که تا به حال اونو ندیده بود در انتهای راهرو دری بود که شاهزاده اونو باز کرد با باز شدن در پلکانی مارپیچ و بدون نرده پدیدار شد پلکان پیچ میخورد و بالا میرفت شاهزاده با خودش فکر کرد امیدوارم نیفتم چون حتما باید بفهمم اون بالا چه خبره شاهزاده به آرامی در حالی که جرعت نداشت پایین رو نگاه کنه از پله ها بالا رفت و به بلندترین مناره کاخ رسید در کمال تعجب پیرزنی کنار پنجره نشسته بود شاهزاده بی توجه به اینکه او پیرزنی خمیده و زشت و پرچین و چروکه لبخندی شیرین زد شاهزاده گفت خانم از آشنایی شما خوشبختم ببخشید چه کار میکنید؟ پیرزن دست شاهزاده را گرفت و به سمت گوشش برد شاهزاده سالش را تکرار کرد پیرزن پاسخ داد عزیزم نخ میریسم پیرزن دایه فرمان روا بود و سالها بود که در مناره کاخ زندگی میکرد طوری که از یادها رفته بود چون ناشنوا بود در مورد ممنوعیت چرخ ریسندگی چیزی نشنیده بود. شاهزاده که قبل از این چرخ ریسندگی ندیده بود خیلی کنجکاف شد. بنابراین گفت من دوست دارم مثل شما ریسندگی بکنم ممکنه خواهش کنم اجازه بدید منم امتحان کنم. پرستار پیر از صندلیش پایین اومد و جاش رو به شاهزاده خانم داد. چون شاهزاده پیش از این هرگز با چرخ ریسندگی کار نکرده بود دستش در رفت و میله چرخ انگشتش رو سوراخ کرد فریاد کوتاهی کشید و ناگهان نقش زمین شد فرستار پیرفکد که دختر از حال رفته و زنگ رو به صدا درآورد. تا زمان رسیدن فرمان روا و ملکه زربان قلب شاهزاده خیلی کم شده بود اونا در حالی که از غم زیاد نیم دیوانه شده بودند گفتند دختر ما داره میمیره اما یک کوتوله یادآور شد که محسن ترین پری چه حدیه ای داده کوتوله های جادویی داشت طوری که میتونست در یک چشم بر هم زدن به قصر پری بره چند دقیقه بعد موسن ترین پری در کالسکی از آتش که توسط چند اژدها کشیده میشد از راه رسید. پری روی شاهزاده خانم خم شد و با نفس زندگی رو به او منتقل کرد. پری گفت: حالا که قرار شاهزاده به مدت 100 سال بخوابه تا با بوسه ی شاهزاده بیدار بشه، بهتره که در آسودگی باشه و وقتی از خواب بیدار میشه اطرافیانش دورش خواهند بود. موسنترین پری در کاخ میچرخید و با چوب جادویی به پیش خدمتها و خدمتکارا و درباریان و حتی سگهای کاخ میزد در چند لحظه همه اونا به خواب رفتند فرمانروا و ملکه فریاد زدند ما چی؟ ما پدر و مادرشیم ما کسانی هستیم که بعد از بیدار شدن دخترمون باید پهلوش باشیم اما پری گفت متاسفم این امکان نداره. فرمانروا و ملکه راضی شدند که حداقل وقتی دخترشان از خواب بیدار میشه چهرای آشنا میبینه بینه. اونا شاهزاده رو روی تختی گذاشتند که تا رو پود پردش از ابریشم و طلا بود. بعد کاخ رو ترک کردند و دستور دادند تا بیداری شاهزاده هیچ کس نزدیک کاخ نره. پری گفت: لازم نیست از این بابت نگران باشید پری به درخت و خزنده ها دستور داد که زیر زمین قرار بگیرند فورا اونا زیر زمین رفتند و اطراف کاخ جنگلی به وجود آوردند به طوری که کاخ کاملا از نظر پنهان شد و فقط مناره های اون از بالا دیده میشد. در کاخ هم که شاهزاده و اطرافیانش به خواب رفته بودند سال گذشت، با گذشت زمان فرمانروا و ملکه موردمد و خانواده‌ی جدیدی حکومت کشور را به دست گرفتند. شاهزاده فراموش شده بود و در مورد جنگل آمیغ هایی پخش شده بود. گفته می‌شد که در اون جنگل آدم خاری زندگی می‌کنه و هر موجود زنده‌ای که داخلش بشه می‌خوره. خانواده سلطنتی جدید در قصر داخل شهر زندگی می‌کردند اما شاهزاده جوان همیشه از قصر خارج می‌شد چون به دنبال هیجان و ماجراهای جالب بود شاهزاده گفت این جنگل مرا به طرف خودش میکشونه کنجکاوم ببینم توی این جنگل چیه همه اطرافیان شاهزاده در مورد آدمخار چیزهایی گفتند اما پیرمردی جلو اومد و کلاهش رو برای شاهزاده برداشت و گفت قربان حرفهای اونا رو باور نکنید هیچ آدم خاری اونجا نیست مادرم اینو گفته در طول زندگیش حتی یک کلمه دروغ نگفته خدا بیا مرزدش اطرافیان شاهزاده با ناراحتی گفتند تو فقط یه دهخان هستی تو چه میدونی یا همینطور مادرت شاهزاده به همه گفت این کار میکنم بعد متواضعانه به پیرمرد تعظیم کرد و پرسید مادر پیرش دقیقا به او چی گفته پیرمرد گفت قربان مادرم گفته زیر اون مناره های تلایی کاخی وجود داره در کاخ شهازادهی زندگی میکنه. البته شاهزاده معمولی نیست زیباترین و بهترین شهازادهیه که شش پری همه خوبی هاشونو به او هدیه کردند با گفتن این حرف قلب شاهزاده تکانی خورد دلش میخواست در مورد شاهزاده چیزهای بیشتری بدونه. اما وقتی دوباره نگاه کرد پیرمرد رفته بود. شاهزاده فکر کرد شاید پیرمرد از خدمتکاران آدم خار بوده که میخواسته او را گول بزنه و به جنگل ببره. از طرف دیگه اگه شاهزاده اونجا زندگی میکرد چه شانسی بود؟ قبل از آن که ترس بهش غلبه کنه اسبش رو جلو برد. اطرافیانش نمیخواستن همراهش برند. شاهزاده گفت خودم تنها میرم. هرچی شاهزاده بیشتر داخل جنگل میشد درختها بیشتر و فشرده تر میشدند. طوری که مجبور شد از اسب پیاده بشه و پیاده به راهش ادامه بده. اطرافش فریاد موجودات نامرعی رو میشنید. آنقدر درختها فشارده بودند که نور آفتاب از میون اونا رد نمیشد. به همین خاطر شاهزاده نمیدونست روزه یا شب. با این حال نترسید و به راه خودش ادامه داد تا به دره بزرگ کاخ رسید. دو سگ با دندانهای تیز مراقب اون بودند. شاهزاده به آرامی قدمی برداشت. بعد هم یکی دیگه اما سگا تکن نخوردند. با خوشحالی قدم برداشت و وارد کاخ شد ترسان و لرزان از چیزی که اونجا دیده بود از این اتاق به اون اتاق میرفت گرد و خاک صد ساله همه جا را گرفته بود وقتی درباریان رو دید که به خواب رفتن و مثل مرده ها حرکت نمی کنند ترسید که نکنه مرگ مثل اونا او را هم از پا در بیاره با همه این اوصاف به چرخیدن ادامه داد و به همه جا سرک کشید سرانجام به اتاق خواب دختر جوان رسید اونجا هیچ گرد و خاکی نداشت و هواش تازه تازه بود شاهزاده پرده تخت رو کنار زد و روی تخت شاهزاده زیبا دید با گونه هایی به رنگ گل سرخ و رگه از طلا در موهای بلندش اونجا روی تخت دراز کشیده بود شاهزاده نفس کشیدن دختر جوان را شنید و فهمید اون نمرده. بلکه فقط خوابیده. شاهزاده نزدیکتر رفت هرچه نزدیکتر می شد دختر به نظرش زیباتر می رسید لبهای دختر کمی باز بود شاهزاده دوست داشت او رو ببوسه نگاهی سریع به اطرافش انداخت هیچکس نمیفهمید اگر او رو میبوسید فقط یکی به بحث اینکه که رو روی لپای دختر قرار گرفت دختر از خواب بیدار شد شاهزاده خجالت زده عقب رفت اما در همین لحظه همه ی درباریان از خواب بیدار شدند و به طرف شاهزاده اومدند اونا در مورد خواب صد سال توضیح دادند و اینکه فقط شاهزاده ای با یک بوسه میتونست دختر زیبا رو از خواب بیدار کنه. روز شاهزاده جوان برملا شد. شاهزاده روی زانو نشست و از دختر جوان خواست تا با او ازدواج کنه. گفت: زیبای خفته من، میدونم که کسی جسور رو دوست نخواهم داشت چون من تو رو دوست دارم. زیبای خفته همونطور که شاهزاده او را نامیده بود، لبخند زد. چون او هم در همون نظر اول عاشق شاهزاده شده بود دختر دست شاهزاده را گرفت و گفت منم هیچکس جز تو رو دوست نخواهم داشت اونا تصمیم گرفتن بدون لحظهای درنگ ازدواج کنند به این ترتیب قبل از اینکه روز تمام بشه عروسی کردند صبح روز بعد شاهزاده خیلی زود از خواب بیدار شد و به زیبایی خفته گفت کاری دارم که باید انجام بدم ولی شب برمیگردم میگردم شاهزاده به سمت قصر پدر و مادرش به راه افتاد اونا شنیده بودن که پسرشون به جنگل رفته بنابراین با دیدن او آسود خاطر شدند فرمان روا گفت پسرم خیلی نگران شده بودیم ملکه گفت پسرم بگو ببینم تو جنگل چی پیدا کردی شاهزاده شانه هاش رو بالا انداخته گفت فقط یه کاخ قدیمی هیچ چیز با ارزش دیگه ای نبود ملکه گره از ابروش باز کرد و گفت عزیزم سه روز و سه شب از خونه دور بودی باید خسته و گرست نباشی شاهزاده گفت نه اصلا گرسنه نیستم بعد فورا اضافه کرد در جنگل به یه زغال سوز برخورد کردم او به من تختی از کاه نرم برای خواب و یه نون و پنیر خوشمزه برای خوردن داد نزدیک بود چه حقیقت رو بگه و در مورد زیبایی خفته با اونا صحبت کنه. با خودش فکر کرد: پدرش خوشحال میشه. اما مادرش چی؟ ماسک مادرش شبیه یه زن معمولی بود. در حالی که او از نژاد خارانی بود که غذای مورد علاقهشون کودک بود. زن میدونست که فرمانروا فقط به خاطر ثروت زیادش باهاش ازدواج کرده. چون می ترسید نکنه رو ترک کنه دقت می کرد که ماهیت آدم خاریشو مخفی کنه به همین خاطر بود که وقتی بچهی به دنیا می اومد می تونست خودشو بگیره و از خوردنش سرف نظر کنه شاهزاده می دونست که مادرش آدم خاره با این حال او رو دوست داشت اما در این حال ازش می ترسید شاهزاده می ترسید که مادرش چه کار کنه اگه بفهمه او مخفیانه ازدواج کرده. به همین دلیل موقع غروب به پدر و مادرش گفت به شکار میرم و صبح برمیگردم. هر شب شاهزاده نزد زیبای خفته میرفت زیبای خفته هم هیچ وقت نمیپرسید در طول روز کجا بوده زیبای خفته با عشق و علاقه به او و فرزندانش زندگی میکرد اولین فرزندشون یه دختر بود به اسم داون بعدی هم پسری به دنیا اومد به اسم دی در مورد پدر و مادر شاهزاده باید بگیم که فرمانروا داستان شکار را قبول می کرد اما ملکه خیلی مطمئن نبود او همیشه از شاهزاده می پرسید چرا شباب شکار میره؟ در حالی که هیچ چیز نمی تونه بگیره؟ اما هر بار شاهزاده با یه لبخند شیرین و یه بوسه به مادرش پاسخ میداد و ملکه هم تا روز بعد چیزی نمی پرسید بعد از دو سال پدرش فوت کرد. ملکه وارث همه چیز شد و شاهزاده فرمانروا شد. او تصمیم گرفت که حالا که قدرت دستش، زیبای خفته و هاشو به قصر ببره. با کمال تعجب مادرش عصبانی نشد. ملکه زیبای خفته رو مثل مهمونی با ارزش پذیرفت و بهش مهربانی کرد. برای شاهزاده داون و شاهزاده دی هم همینطور طور. کافی بود فقط اسباب بازی جدیدی یا هر چیز ای بخوان. ملکه بیلا فاصله میگفت عزیزانم زود آماده میکنم حتی وقتی بچه ها شیطنت میکردند ملکه اونا رو سرزنش نمیکرد و میگفت ایراد گرفتن از بچه باعث میشه اونا خشن بار بیان اما اگه ندیده بگیریم باعث میشه بهتر بزرگ بشن شاهزاده یعنی فرمان روای کنونی بسیار خوشحال بود و میگفت چه باشکوه، ما از بودن با هم چقدر خوشحالیم اما ناگهان خطری کشور رو تهدید کرد. مردان جنگی و خشن امپراتوری کنتوبوت میخواستن به کشور تجاوز کنند. فرمان به زیبای خفته گفت باید با اونا بجنگم اما نترس سالم برمیگردم. در مدتی که نیستم لازم نیست نگران چیزی باشی. مادرم حکومت رو به دست میگیره و از تو و بچه مراقبت میکنه. فرمانروا بعد از گفتن این چیزا قصر رو ترک کرد زیبای خفته چهار سال بود که در قصر زندگی کرده بود اما اولین باری بود که با ملکه تنهای تنها مونده بود صبح روز بعد ملکه به زیبای خفته دستور داد به دهکده بره جایی که در اعماغ جنگل خونه داشت زیبای خفته با اعتراض گفت خانم من ترجیح میدم اینجا بمونم ملکه گفت فرمان روا چه کسی رو مسئول کارها کرد تو یا من حالا آماده بشو بچه با خودت ببر زیبای خفته در حالی که نمیدونست چرا ملکه ناگهان با اوبت شده آزم دهکده شد هشت روز بعد ملکه به خانه اونا رفت او منشی جوانی رو که مسئول آشپزخانه بود احضار کرد و گفت میخوام دستور شام فردا رو بدم منشی جوان پرسید خانم چی میل دارید؟ ملکه شروع به خندیدن کرد ماسک صورت ملکه افتاد و منشی با ترس دید کسی که روبروشی استاده یه آدم خاره با چشمایی که از سختی مثل سنگ چخماقه ملکه با صدایی بسیار آرام اما طوری که باعث شد خون در رگهای مرد منجمد بشه گفت فردا برای شام شهزاد دام رو میخورم رنگ صورت منشی مثل گچ سفید شد اما آدم کسی نبود که بشه باهاش بحث کرد فردا صبح مرد با چاقوی بزرگ به اتاق بچه ها رفت شاهزاده دان به سمت او دوید و دستهاش رو دور گردنش انداخت و پرسید برام شیرینی آوردی؟ منشی گیر افتاده بود با خودش گفت این بچه بیگناهه چطور میتونم او رو بکشم؟ مرد چاقو رو انداخت و شاهزاده رو برد به انتهای حیات پشتی جایی که او همسرش زندگی می کردند. به همسرش گفت که بچه رو باید پنهون کنیم مرد گفت باید برهی بکشم و به جای بچه اونو آماده کنم روش ادویه و سس غلیز میریزم امیدوارم که آدم خار تفاوتش نفهمه ملکه ی آدم خار گوشت رو به دندان میکشید و در حالی که فکر میکرد داره شاهزاده دان رو میخوره میگفت خوشمزه است خوشمزه است ملکه بسیار خوشحال بود در حالی که زیبای خفته وقتی فهمید دخترش گم شده خیلی ناراحت شد زیبای خفته گریه میکرد و میگفت دخترم دزدیده شده میترسم مرده باشه من نتونستم از دخترم مراقبت کنم مرد دلش میخواست به زیبایی خفته بگه که شاهزاده زنده است اما میترسید فقط زمانی میتونست احساس آرامش کنه که ملکه به شهر برمیگشت هشت روز گذشت و ملکه دوباره به دهکده برگشت یه بار دیگه به دنبال منشی فرستاد و گفت برای شام یه پسر و آبدار دوست دارم بچه دوم زیبای خفته شاهزاده دی باید خیلی خوب باشه مرد با عجله به اتاق بچه ها رفت. شاهزاده دی سرگرم بازی با میمون دست پروردش بود. این بار تحمل نکرد. به سرعت شاهزاده را نزد همسرش برد و بعد بوز جوانی رو کشت و با ادویه و سس زیاد برای ملکه آدم خار برد. ملکه غذا رو بلعید. بعد با عجله به اتاق بچه ها رفت و دید زیبای خفته از غم مثل دیوونه ها اونجا نشسته. زیبای خفته گریه میکرد و با ناامیدی میگفت پسرم هم مثل دخترم دوزدیدن من بی مادر دنیا هستم شوهرم منو سرزنش میکنه ملکی ظاهرن همدردی میکرد اما باطنن فقط بیننده بود منشی هم کناری ایستاده بود و هیچ نمیگفت وقتی مرد دید که ملکی به شهر برمیگرده بسیار خوشحال شد منشی فکر دیگه او رو نمیبینه تا کنون آدم خار فکر میکرد هر دو فرزند زیبای خفتر و خورده اما بعد از هشت روز دفعه دیگه ملک برگشت و او رو احضار کرد آدم خار غرید و گفت در طول هفته غذا نخوردم خودم را برای خوردن چیزی یا بهتر بگم یه کس دیگه آماده کردم کسی که مدت هاست دلم میخواست بخورمش برام خوشگل کوچولو بیار بار شام من آماده کن منشی با نامیدی فکر میکرد اگه اون چرا که گفته انجام ندم منو میخوره یا زندگی من یا زندگی زیبای خفته مرد خنجرش رو برداشت و به اتاق زیبای خفته رفت تصمیم گرفت بی خبر اون رو نکشه و حقیقت رو بهش بگه وقتی مرد به زیبای خفته گفت که ملکه آدم خارا اونو فرستاده تا بکشدش انتظار داشت زیبای خفته حداقل گریه گرگه کنه اما این کارو نکرد فقط آروم نشست مثل کسی که یخ زده باشه سرانجام گفت آیا او به شما گفت بچه های منو بکشی؟ منشی سرش رو داد. و قبل از اینکه بتونه چیز بیشتری بگه زیبای خفته گفت هرچه زودتر بمیرم زودتر بچه هامو می میبینم زیبای خفته سرش رو پایین انداخت و به منشی گفت که کارش انجام بده مرد خنجر را بلند کرد اما گردن سفید او رو پیش روی خودش دید زانو زد و شروع به گریه کردن کرد و گفت شاه ساده خانم به من کمک کنید حتی اگه به قیمت زندگی من تموم بشه شما باید زنده بمونید و بچه رو ببینید مرد زیبای خفته رو به خونش برد هنوز به خونه نرسیده بود که گوزنی در هاشگه جنگل دید فوری اونو گشت و با ادویه و سس غلیز اونو برای آدم تهیه کرد دقت زیادی کرد که سس حسابی غلیز و پر ادویه باشه ملکه آخرین استخونهاشم جوید و لبهاش را لیسید و گفت این نسیسترین غذای بود که تا به حال خوردم حالا باید خودم را برای برگشت فرمان روا آماده کنم اما همینطور که از حیات میذشت صدای گریه کودکی را شنید به نظر می اومد که صدای گریه از خونه منشی باشه ملکه میدونست که منشی بچه نداره به همین خاطر با کنجکاوی از پنجره دزدکی نگاهی کرد او دید که شاهزاده داون به دامن مادرش آویزون شده و با گریه از او میخواست که برادرش رو به خاطر شیطنتش تنبیه نکنه شاهزاده میگفت مامان لطفا عصبانی نشد دیگه اذیت نمیکنه وقتی ملک فهمید که او را گول زدن از عصبانیت دیوونه شد. دستور داد دیگی بزرگ از مارها و وزقهای زهراگین پر کنند. بعد هم زیبای خفته و فرزندانش و منشی و همسر منشی را با دستهای بسته به آشپزخونه بیارند آدم خار رو کرد به جلاد و دستور داد اینا رو داخل دیگ بنداز. اما در همین لحظه فرمان روا وارد آشپزخونه شد. چون بر امپراتوری غلبه پیدا کرده بود و مشتاقانه میخواست زیبایی خفته و فرزندانش را ببینه به همین خاطر به تاخت از میدان جنگ برگشته بود و زودتر از اونچه مادرش انتظار داشت رسیده بود وقتی وارد آشپزخانه شد با ترس به صحنه‌ای که دید خیره شد و پرسید چه خبره منظور از این کارا چیه هیچکس کس جرأت پاسخگویی نداشت چون ملکه آدمخور با نگاهی ترسناک اونا رو ساکت نگه داشته بود فرمان به مادرش نگاه کرد و با عصبانیت گفت فورا جواب میخوام آدمخار آنچنان فریادی کشید که خونه و ریشه درخت و به لرزه در اومدند. تمام نقشه ها و توطعه هاش نقشه براب شده بود فریاد دیگهی کشید و خودش رو داخل دیگ انداخت و موجودات داخل دیگ او رو نیش زدند تنها کسی که برای او سوگواری کرد فرمانروا بود چون در هر صورت مادرش بود آنگاه رو کرد به زیبای خفته و گفت ملکه من عزیزترین همسر دنیا من تو و دختر و رو خوشبخت میکنم. گفته شده که از اون به بعد فرمانروا و ملکه تا آخر عمر با خوشی و خوشبختی زندگی کردند